عوض بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهین سعیم یه صلوات بکرستید تا شروع کنی بحث اللهم حمد و عالم محمد. الفصل الخامس و فتروج صفحه 231 در فصل رابع ما مستحبات نماز رو تکمیل کردیم برای البته اگه میخواید کامل کامل ببینید باید کتابایی رو نگاه کنید که تخصیصا در مورد مستحبات نوشته شده کتابایی مثل مفاتی کتابایی مثل تو این فضا حالا یک کتابی هم یه نفر معرفی کرد من خودم خیلی باش آشنا نبودم مرآت و کمال آقای مانگانی این سجند هست و اون آقای دارم کرد که همه مستحبات نماز رو داره میره آتول چمال آقای منگانی حالا من نگدم شما ببینم نمیدونم شاید حالا نفری اوینام که میگرد تخصیصا برای همین نوشته شده حالا مصطبات خیلی دیگه لذا انتظار نداشته باشید یک کتاب حتما همش رو بتونه جمع کنه خب اما فصل پنجام چی هست در مورد تروچ یعنی در نماز چه چی چیزهایی باید ترچ بشود چه چیزهای در نماز باید ترج بشه حالا ببینیم شهید سانی که یوم و انیوری در به ها ما یجب و ترکو ممکن است که اراده کرده باشد شهید اول به این تروچ. به یعنی با این تروچ. ما یجب و ترکو آنچرا که ترکش واجب بود حالا ما همین رو گفتیم که ما همین رو گفتیم یه چیزایی که ترکش واجبه میگی پرد یه نکته اگر کتاب رو نگاه کنید صفحات بعدی رو در این کتاب کنگره صفحه دیویست و سی و هست دیویست و سی و رو ببینید یکی از تروج چی نوشته یجره الالتفات و یمینن و شمالن بعدش تصاعب خمیازه کشیدن. تمتی دست اونجوری باز کردن. چششید. عبست بشه این من اعضایی. تنخم فرقعه. شکستن انگوشت ها اینجوری. به حرف این من. با حرف واحد دربته باشه. اینها واجب و ترج نیستن. لذا این توجه شهید سانی رو جلب کرده میگه اگر بگیم فصل خامس ف تروچ یعنی اون چیزایی که ترج واجبه پس اون التفات به بعد چه ترج واجب نیست بونو باید بگیم که مذکورا به تبع یعنی شاید اول فصل خامس رو عبور تروچ واجب رو بگه ولی به تبع تروچ غیر واجب رو هم گفت التفات به بعد و یه امکان این هستش که وان یوریده به ما ما یوت لبوتر کوه شایدم منظور شهید اول از این تورج اینه ما یوت لبوتر کوه یعنی ترچ مطلوب است مطلوب هم دونید دیگه ام مز هتمان و غیر هتمانه ام مز و غیر ارزامیه وان یوریده به ما ما یوت لبوتر کوه ام ممن کانه تلبه ما نمتن نریز آیا این طلب مانه از نریز هست یا نه؟ میگه همه بعض داختا میگیم نکن این کار رو ترک کن طلب میکنیم ترچ را خب؟ وقتی طلب کردیم ترچ فعل را آیا نقیز شوالا اجازه میدی یا نه؟ نریز ترچ چی میشه؟ نریز ترچ فیل میشه؟ خود فیل نقیز ترچ فیل ترچ فیل. و نریزش که خود فیل. پر میشه خود فعل. حالا اگر ترچ فیل متنوب است، صاحب میشه. از من میخواد فعل را ترک کنم حالا من فعل رو انجام بدم. بلکه رئیجه آن میدی یا نه؟ حتما، حتما برتر کنم یا اجازه فیل رو میدی؟ میگه اگر منظور از پروب، پروب که واجب باشه، نه اما اگر منظور از پروب، یعنی مطلوبه این مطلوب بودن، اهم از این است که بده یا ایرازه نه خب اهم من که اونه طلبه ما نه، میدن اون وقت التفات، دقت کنید التفات و خمیازه بولنم این ها تروچی میشن که مطلوبن ولی نقیزش هم اجازه داده شده خمیازه کشیدن ترک کردنش مطلوبه ولی حالا نقیزش تر چه خمیازه نقیزش میشه خود خمیازه اگر خمیازه کشیدی مانعی نیست از اون بحث ها بود دیگه به جای این همه توضیح این رو میگفت نماز تو دست است؟ بعضی الزامیه این رو میگفت خیلی قشنگتر طلب هم یه چیزیات میگیره آیه محمدی ما نرمه ننگیز روی اون نگیز بنویسید نگیز ترک که همان فعل است. بسیار خوب وحیه ما سلفه پس آقا دارستانی تروچ رو به چی تفسیر خواهید کرد تروچ الفستول خامس فتر تروش به چی تفسیح خواهد کرد؟ تفزیح. تروش یعنی چی؟ ترکی انجام کار. یعنی آن چیزهایی که در نماز در دو احتمال داره یا وجوبن از ما خواستن ترک کنیم ترقیه. یا مطلوبه وانی انجام بشه اشکال نه ولی انجام بشه اشکال نه نه یعنی عم از اون دیگه ترک که ترک های لازمه و ترک های غیر لازم دو احتمال شد دیگه ترکی ن از پس در خامس تروج دو احتمال داره یک تروج الزامی من با ترلیل خودم میزم دو تروج اهم هست الزامی و در الزامی همینش همیتونی به این شکل که خب پس تو احتمال تونی تبدیل هست وحیه ما سلفه حالا ترک چی هم مصادیق چیه ما سلف بگه قبلن اینا رو یه دش رو گذراندیم کجا گذراندیم پاورانی هم توضیح داده فصل ثانی صفیه 182.4 حالا با عنوانش رو بگیم جاقای کریمی بدونه کجاست صفیه اون با ما رو هم نمیاد تو همون شروط یادتونه شروط که می خوندیم شروط کردیم خوندیم؟ آره ما شروط رو خوندیم تا مکان نمازگزار رو رو رمین رسید ها رو رسیدیم در شرط سادس شرط سادس اونجا نوشته ترکل کلام فی اصنای سلات یه سری ترچه ها رو در اون از سادس نام می‌بره. رحمی ش... شروط رو بگو شروط رو بگو ش... ش... آلا چند تا بود شروط اول, اول وقت بود قبله بود. بود. بود مکان بود سطر و لوره تهارت حالا اون ششمیش تر کل چلا این یه سری تروچ خب وقتی اونجا گفته الان تو این فصل جدید که تروجه میگه ها همون تروچ رو داریم و یه سری جدید ها علو هم سلیقه خوبی نیست خب همونش یه جا بگو دیگه یه اونجا یه اینجا شهید اول سلیقش خیلی برای من این جورجاها نمیاد چهجوری چی باعث شده که اینجوری بیا مصعبات یه خورده اونجا یه خورده اینجا طروج یه خورده اونجا یه خورده اینجا این خیلی میگم میتونید با سلیقه محقق در شرایط مقایسه کنید ببینید اون چطور آورده چون این دو تا چقدر عین همند هم. اساس اون نو نوشتن و اون چی میگن مثلا دو تا ماشین که ساختمانشون مدلشون یکیه چی میگن پلتفرم میگن آره حالا بیس نمیدونم پلتفرم شرط ببین لمعه با شرایط یه پلتفرم هر گفت هرطورش یه دور فخ خلاصه بدون استدلال بدون شاخوبرد بدون اینکه در مقام بیان جزیات باشه می توید رو با هم مقایسه کنید. هیچ وقت لمع رو با شرح لمه مقایسه نمیکنه چون این یه مدل دیگه هست. مثلا شما حق ندارید شرایع رو با مثلا مسالک مقایسه کنید. شما حق نداری لم رو با جواهه رو کلان مقایسه کنید. شما حق نداری لمع رو با مکب ب شه مقایسه کنید. چون اصلا اون یه مدل دیگه است این یه مدل دیگه است. اما خود اون شرای و لوم رو میتونید با هم مقایسه کنید. ببینید آیا اینها سلیقهشون فرق می‌کنه و کدوم بهتر هست؟ من چند بار محدود مقایسه کردم شرایع خیلی بهتره. حالا برحال فهمونن البته این در حد یه ذره مثلا یه سلیقه این و اون وقت خیلی فرق نداره یکی عین خیلی انقدر فرق نداره. مصالح بیشتر حجم داره. آره؟ مصالح حجم داشت و بیشتر ایشا مشه. حجمش نمی رو نمیدونم اونم ده مسالج آره شاید بیشتر بلدون. از جهت علمیت هم فکر کنم مسالج بهتره. و حتی از جهت اعتبار هم شاید بهتر خب پس آقا یه سری تروش اونجا داشتیم اونا رو پس ببینیم همون صفحه 184 یا اگر صرفت رو با ما یکی نیست از سادس توی اون شروط رو ببینین الان من براتون نشون میدم این تروج رو اولیش که هم تلکل کلامه از سادس فقط حواستون اونجا باشه از سادس ترکل کلام کلان نیست ها از سادس ترکل کلام ترکل فعل چسی یعنی اون ترکل کلام یکی از موارد تارش هست ترکل فعل چسیج تو نماز شما فعل چسی رو انجام بدید نماز باطل میشه ترک سکوت یه دونه ببین درد قص نمازش سکوت کرده ترکل بکا جریه برای دنیا قهقه وسط نماز قهقه کنی باطل میشه چت چت یعنی جوری مثل سنیا دست و دست انداختن آره. التفات یعنی تحجه دادن صورت به اون و این ور اچل و شرب اینها تروچیست که اونجا گفته شد حالا الان تو این فصل که تخصصاً برای تروچ قرار داده شهید اول فسور خامسف تروچ میگه آقا تروچ وحیم ما سلم همون جا که گفتیم اونا هست فشرت سادست و تأمین اینا هم جدی داشته. تأمین چیه؟ وسط نماز نباید تأمین کنی تأمین اجتماعی اینا <تصفيق> اره. تأمین هنی آمین گفتن وسط نماز بگه آمین اگر بین سنیا نماز بخونید تمام جماعتشون که وقتی هم دو رو تمام کرد قیل المغضوب اله همولا زالین یه دقیقه می روی یه دقیقه سیدار اومد همه دارم یه آمین. آمین. آمین. آمین اون موقع باید می شون خواهد تو سرتون خدا یای حالا خب اون آمین دیست که آمین. آمین. آمین حرامه ترچ باید بشه آمین. و تأمینه آمین گفتن آمین یعنی استجه خدای قبول کن شروع همدم یعنی دعاست دیگه اگه نمیگه که یا که نبود و یا که است؟ اهدنا اهدنا سرات المستقیم ما رو به راه راست ادایت بفرما نه راه این بدبخت و را راه مستقیم ادایت کن وقتی تموم شد سنوی میگن آمین اتفاق خودشون تون راه بدبختان. و تأمین البته حتی اگر جای دیگرش باشه مثلا قنوت این دیگه ممکنه برای ما پیش بیا تو قنوت بگیم که رب نهاد جنافه دنیا حسن نهوه فی الاخره ترسن از آب نار باید بگیم که حالا ما مقدسی دیگه آمین خدا یا اجابت اونم بگی کار صافه از نماز تمام نظام میگه فی جمعی احوال سلات در هیچ بخشی از نماز آمین نباید بگویی اون دیگه و برگش میشه دیگه باید ببینیم از روایات آیا اونم برمیاد یا نه ولی دو... الهیامین هم انگار همون آمینه دیگه فرنم کنه تو بخونی مثلا تو امین بله دیگه همین اگر خود مت دعاء باشه اینم فرق باید ببینه ممکنه بگیم من یه دعای معصوم میکنم تو غنوت که تو خودش امین هست آره اینم یه سوال خوبیه میشه اینو با... مطرح کرد ولی با این فتوا کردن داده شد جوابش معلوم نیست انظرا چی باید روایت رو دید حتی ممکن از خود روایت هم بر نیاد حالا این این رو این امین رو ما پارسا تو کارگاه همین فقه بررسی کردیم برای شما هم همین رو انجام میدیم شما یادتون باشه از روایتاش ببینید این دو تا سوال جوابش برمیاد یا نه مثلا آمین یا دعایی که خودش توش امین رب العالمین هست ببینیم ازش برمیاد یا نه به نظرم هم میرسه که این آمینی که نه شده اشاره به همون آمین اهل سنت، اونو داره نه میکنه لذا این اونو بگیم دیگه اینها اشکال پیدا نمیده چرا؟ رو؟ آره دیگه از فقه خودشونه دیگه آره. فقه خودشون منابش با ما فرم میکنه. اونا روایاتشون از اعمه نیست و از پیغمبر حضور هست. منطقه بدیه فقه که اونا به پیغمبر دسترسی نداشتن که. مسیر اونها تا پیغمبر قطع شده. ست سال قطع بوده. و به خاطر مجبور دادن از افراد پرسیدن. از آهات پرسیدن. آهات که پرسیدن خب بعد اینو اخه این آحاد حجت نیست که لذا گفتم پس ببینیم هر کدوم از این واحدها خبرش حجت هست یا نه لذا بس حجت خبر واحد و اینا پیش اومد براشون و این پس علوم حدیث و اینا براشون پیش اومد اما ما نه وقتی اون صد سال من کتابت برداشته شد ما دیدیم اون خراب شد دیگه کلا عمر اولک دین پیغمبر رو خراب کردن نابود کردن از بین رفت دیگه ما احیاش نکردیم گفتیم اون دیگه یه فاتحی هم کندیم محتیم دین آخر از زمان توسط این دو تا پیرمند از بین رفت اما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم شخصی داریم کاملا مثل خود پیغمبر زنده اله همین دارد موجود مقدس امام باغر علیه سم امام باقر در اون ظلمت جهل یه دفعه نوری بود که شکافتش شد و ایشون ما رو با دین پیامبر آشنا کرد احکام رو گفت بعد امام صادق هم کلا جهان رو روشن کرد امام صادق کل دین پیامبر رو کامل عرضه کرد بعد خلفا تازه فهمیدن چه ضربه‌ای خوردن از ائمه دیگه اجازه ندادن بعد از امام صادق امام کاظم رو کلا انداختن تو زندان امام رضا رو بردن وجودی. امام امامای بعدی رو امام جواد رو تو جوانی شهید کردن امام هادی و امام عسکری رو اصلا بردن تو پایگاه نظامی دیگهشون داشتن ولی کار, کار عیمه شده بود دیگه دین کامل ارائب شده چیزی نمونده بود لذا امام باقر رو مخصوصا امام صادق علیه السلام، این دوتا بر گردن همه انسان ها از این جهت حق دارن حالا اینکه امام هستن که هیچی از این جهت حق دارن که دین رو کامل به ما ارائب کردن ولی ارسالت نه حالا سوالتی می از کجا بردن شافعی مثلا ابو هنیفه اینا ابو هنیفه ها چه قیل از روایات چیزای دیگر هم قایل بودن ابو هنیفه مثل نف یه چرتوپرت هایی تو نفت میدیدید اونجا اینه پس اینم مثل اونه اینم همونه قیاس میکردن ابو و هم با قیاس حکم الهی رو فتوا میداد ولی روایات هم که دارن روایتشون از اون مجرای صد سال کاملاً ظلمانی رد میشه دیگه لذا فتفای اونها تو بعضی از موارد فتاوای به در بخوری نیست ولی خب یه سری فتاواشون هم هست شیعه هم همونا قائله این اینم بگم رشم فقه اهل سنت خیلی دور از شیعه نیست این یادتون باشه یه وقت جای نگیرید بگو اخره سنت کلا چیز دیگه هست؟ نه شاید 70 درصد فقه اهل سنت حداقل 70 درصد فقه اهل سنت با ما یه چیه یعنی حق علتش یه علتش اولا یه سریعت همون روایاتیه که در دستشون بود بلاخره همه روایات که جل نشدی همه روایات که تحریف نشد. این تو نماز چجوری وایسی، این روایتش مثلا مونده برای اونها ولی علت مهمترش اینه احمد علیه بر اونها هم اشراف داشتن و نذاشتن ف احل سنت خیلی دیگه جای پرت بره اونها راویانشون میومدن از حضرات استفاده میکردن هرچند شیعه نبودن مثل خود عبی حنیفه که دو سال از حضرت استفاده کرد و این تأثیرات حضرات با که اونها اماما را قبول نداشتن باعث شد که فقه اهل سنت خیلی پرت نباشه بعضی جاها اهل سنت دیگه کلن دست اماما را ویل کردن رفتن اونجا دیگه به احکامی رسیدن که من خجالت میکشم بگم اینجا رضا اكبر رو میدونم چه صدایی دیگه اصلا شرمنده میشه یه جای بخواد توضیح بده اینا رو خب این هم از بحث فقه اهل سنت ولی اینو بگم فقه اهل سنت ما تخصص نه توزیه علمیشیه در مورد فقه اهل سنت درسی بحثی استادی مباحثه کتابی چیزی خیلی نداریم منم را اهل سنت اصلا چهجوری استفاده کردن من بلد نیستن الان اینجوری شده. قدیم‌ها الان همین شهید ثانی، خدا رحمت کنه، خود همین شهید ثانی که الان داریم برش می‌خونیم، مفتی همه مذاهب بود. یعنی هر کسی سوال من داشت، زود جواب نمیداد میپرسید: "طالب چی هستین؟" می‌گفت: "بصصم من حنفیام." می‌گفت: "خب شما اینه." اون یکی میگفت: "شافعیام، مازیورونا رو میگفت." اون یکی میگفت: "شیعه‌ام، مرتضیه می رو می می شی می ما اینه." ولی ما اینجوری نیستیم. از ما گرفتن این توانایی‌ها. خب و تعمیر فی جمعی احوال الصلاه و انکان عقیب الحمد میگید آقا پشت هر گفتیم دیگه اون دعا دیگه دیگه اهدنا الصراط المستقیم دعا است بزید بگم امین میگیم نه اجازه نداری او دعا هم. یا یعنی دعایی مثلا در بین نماز یه دعایی خوندید بزید امین بگیم نه نمیشه اصلا نمیشه چون هم ندارم بله یه جا میشه الال تقیتا اگر بین داعش اون امین رو نگی میفهمنش الان مثلا نفوزی های ما توی همین کرده نفوزی های ما توی بلوچا، بعضی از این الان تو همون دموقرات ها تو هم عربیل و اینا بعضی هاش های ما ولی هیچ که نمیشته سنو. الان باور میکنیم تو همین اسرائیل چندین سپاهی و چندین اطلاعاتی ما اونجا هستن و البته به همون مقدار هم الان در بین خود ما هم میدونیم چندین اسرائیلی الان وجود داره افرادی اصلا که زبان اونها رو به بهتری نبیاد گرفتن، رفتن بین اونها و ما چون دشمن زیاد داریم، مجبوریم خیلی کار کنیم به خاطر همین اطلاعات ایران جزو قوی ترین اطلاعات های دنیاست چون دشمن زیاد داریم. مثلا پاکستان اونم نه، خیلی مهم نیست. ترکیه دشمن نداره چه خیلی. به مدار کار کردن بس شما نه. حالا اون نفوذیه الان رفته اونجا بین داعشیا نفوذی داره. میخواد نماز بخونه. گویا یه بار سردار سلیمانی هم تو نماز اونها حاضر شده بود نماز عبو بکردادی حاضر شده بود و میگوه که اگر تفالا زمان سخنانی میکردی به اونجا نشسته بود. بود حالا تو نماز اینا همه شون آمین میگن تو نگی متوجه میشن دیگه پس بگو روز جور بگو آمین بگو وشنگ پرملات هم بگو که حالا ببینید باطل میشه یعنی این بحثشو میگریم و بله الا ل تقیتا فیجوز هین ازن بل قد یجب اوای جوان اجب اصلا واجب میشه این جونوش بنویسید کما سبقا فعل کت تو تا تو همون جایی که تلوش رو گفتیم اونجا گفتیم بعضی وقتا واجب تو هم بهن ها تو هم بین داشی ها اینجوری نذار ببین نه من شیعه ام خب خوب سرت میبودم شیعه حالا سر تو بولیدن مهم نیست. عملیات رو و میره. پس باید همین اونجا گفتیم پس و گجه با اینجا هم مثل همونه. فرد نباره. خدا لعنت کنه بدعت گذاران رو این احکام ماست دیگه. اکثر بسنم اینجوری. بله؟ ها؟ نه خلف رو چیز کردن؟ ایرانیا ها چه؟ شاره نبودن چه؟ شاره اونها عمر بود و یه جزوش شد. تو گفتوی کارو بکن. بسیار خوب حالا سوالشون باید تبطل و سلاتو به فعلهی لغیرها نماز باطل می شود به انجام دادن تأمین برای غیر تقیه اوی نه سوالت اینجا نبود هنوز نرسیدیم به سوال. سوال تو بعد سوالشون این بود که اگر انجام بده به خاطر تقییه نماز حالا باطل به اراده می خواد یا نه اینو بردش می خب اگر تچتف انجام چیه تامین انجام بدید به خاطر غیر تقیه مثلا میگیری هی خوب اینطوری دستت خسته است میگیری استراتی هم به دستت میدی انجام بدید نه باطل می شود علت علت بطلان نه, نه. آقا علتش که میگیم نهی چند خط بعد علت دیگری هم براش بافتند علت بافته ای هم داریم که میگیم نه علتش اینه چند خط بعد میگیم نه این مطمئن شدید؟ چارچوبه بس رو نوشن کردم بس علتش لنهی است چند خط بعد نه این چیزی که بافتن چیزی که درست کردم حالا ببینیم نهش لنهیه انها فل اخبار چون از تامین در روایات نه شده خب من میگه لسه نگاه کنید. چون اصول رو تشمیل نخوندین لذا این رو بزای توضیح بدن اگر در یه عبادتی شما نه داشته باشید مثلا من میخوام روز عید فطر روز عید فطر روزه بگیرم شارعه میه که عید فطر روزه نگیر خب نظرتون چی اگه من بگم نه من میگرم این روزه قبول یا قبول نیست حبول نیستی که چون خدا داره میگه این روزه رو برای چی میگیری میگه قربتن باشه. خدا میگه من, من نمیخوام مثل او پیرمرده است که به زور میبردم اون برای خیابون خب با من نمیرم او برای این برای خواردم یه او نه خب باید از خیابون ردت کنیم یه او نمیخوام خب این نمیخواد دیگه باطله پس نهی در عبادات باطل کننده است اینو تو اصول خواهید خ خون. حالا اینجا هم نهی در عبادت باعث میشه که این باطل میشه شما میگه ها تأمین نگم شما نه من تأمین میگم پس باطل میشه در همازه المختزی لفصاد فعل عبادت این توصول پس خوندید دیگه یه بحث معادل هم داریم نهی در معاملات که اونجا مطلب به این دیگه سختی نیست دیگه تو معاملات ممکنه بگیم نه باطل نیست چون معامل هستی قربت انلال نیست که معامل هستی خیلی اینجا یه پاورقی داره از خود شهید ثانی میبینیم اون پاورقی رو طولانی هم هست من یه توضیحی میدم چرا؟ چون بد لازمش داریم اگه اون بد نبود من رد می‌شدم الان مدن پاورقی اینو میگه میگه که یعنی من منتظر بودم هم من سوال بپرسید میشه خیلی دقت در اون حدی که خیلی زیاد باشه ندارید مثالی که من زدم نحی از عبادت کدوم بود؟ روزه عید فیتس بود دیگه اینجا چی؟ نحی از تأمین؟ نحی از نماز بود؟ نه نحی از نماز نماز نبودی باید اشکام میگذتیم اون مثال کجا؟ این مثال این کجاش نحی از عبادت بود؟ یه کاریش بین نماز تازه اجزای نماز هم نیست من بین نماز یه تأمین آمین گفتم مثل که بین نماز بردارم یه لیوان آب بخورم خورم مثلا مثل که بین نماز من یه دفعه گوشی بزنی میدن و بردارم بگم آه سر نمازم خودم تماس بده. داشتیم اینجوری یه نفر میگفت تو, تو مسیح میگفت تو نماز امارت گوشی یه نفر زنی میگفت تو سجده بودیم که میگه سر نمازم خودم تماس میگیرم بعد نماز رو ادامه دارم <تصفيق> اینش منحیه نمازش که منهی نیست خب تو پا برقی چهی اینو این تذکر میده میگه من حواسم هست من حواسم هست لذا اینجا باید یه حرف دیگه بگیم میگیم شما بین نماز اگه بگی آقا سر نمازم خودم بعدن تماس میگیرم نمازش باطله یا نه به. چرا؟ نیاکه سرپاده سرور داشتم و شنونیم نه میگم سر نمازم، داره میگم سر نمازم دیگه نمیگه که رفتم بری اصلا میگم می نمازم اگه نفر سر نماز بیه که آقا بردن تماس میگم این چرا باتر نمازش چون کلام داره دیگه بین نماز حرف زده شما بین نماز مگه احکام نخوندید بین نماز از دو حرف بیشتر حرف بزنید باطل میشه دیگه شاید ثانی رضا پاورری میگم میگه یا باید از این باب بگیم باطله چون آمین در واقع کلام زائده و از دو حرف هم بیشتر دیگه آمین از دو حرف بیشتر باطل میشه یا اینج از باب فعل چسیر بگید بگید وسط نماز یه نفر فعل کثیر میگه فعل کثیر انجام بده مثلا وسط نماز سچه سج ها در بینید شیخ خط چندین بار تکرار کنه فعل چسیر باطل اگه یه بارش رو میپذیرفتیم هم تیگه بیشترش رو نمیپذیر یا ازباب فعل چسیر یا از باب حرف زدن در بین نماز اون وقت فعل چسیر شما اشکال میکنید به ایدا آمین یه دونه گفت آمین فعل چسیر میزید بزا شهید سالی میگه آه. اینجا حاله اینجا مشکل به خاطر همین بعضی ها تو باطل شدن نماز با آمین گفتن جیش دارم یعنی اگر باب فعل چسیر گرفته بعد دیده فعل چسیر نیست لذا مشکل پیش میان پس ببینید آمین چون نهی متعلق به خود نماز نیست اون مختزی فساد نمیتونه باشه اما از این ور اگر از باب فعل چسیر بگیرید هم باز مشکل پیش میان چون فعل چسیر نیست از باب چلام بی جا بگیرید حالا اون خارج از نماز هم نیستید یعنی از این باب میشه اختلاف ایجاد بشه این پاورقی پس متوجه شدید حالا ما میگیم اهشت ثانی این رو گفتی پس چرا تعبیرت اونه نهر مقتزی نهر معتزله الفساد میگاره منظور همینا دیگه به پاورقی توضیحات تو بده پاور ولی میتونی مثلا بیاری حالا ادامه میدیم این الان لازم نداشتید این پاورقی رو چند خط بعد لازمتون میشه ولا حالا ببینیم. یه فرعی علمطی همیشه تو همین راستا والا تبت طلب به قوله اللهم مستجب شما میگید اللهم مستجب همون امینه دیگه آمین یعنی اللهم مستجب بگید همون باطل نمیکنه شما بگید چرا چرا اللهم مستجب باطل نمیکنه امین چه همون باطل میکنه میگه چون امین خود کلمه امین خصوصیت داره و اون نه شده این نه نشده که و انکانه به معناه و این از این و و هم من ابتلبه شاید سانی میگه دیگه خود زیاده روی کرده کسی که با همین استجاب هم باطل کرده بالغ هم مبالغه کرده زیاده روی کرده کسی که ابتعا کرده است بین اللهم استجب کما زعفه همونطور که از اون منم قول اون افرادی که مچروح دونستن و باطل نکردن اون هم یه خود دیگه کوتاهی کردن پس از این ور زیاده روی از اون ور کوتاهی راه میانه رو بگید بر وسط و بالغ من به شما ضعف قول من چرا تحت تعمینن همونطور چه ضعیف است قول اون چیزی که تعمین رو مکروه دونسته با چه حساب کتابی مکروه دونسته بنا عن الله انه دعا به استجابته ما یدعو به گفتم این بالاخره دعا دیگه روی این بناهن بنویسید دلیل بر شراحت دعاییست مگه نمیگه تو نماز دعا اشکال نداره خوب این هم یه دیگه استجابت ما یدعوبه آنچه که به آن دعا میکند مثلا اونجا گفت احتناس سرات رو بعد این آمین دیگه پس پخش مجروح میشه شاید سانه میگه نه دیگه این هم انصافا دیگه خورده شل کرده دیگه. این دیگه تسامحی کرده چه نمیتونیم من جامعه. اونم استجب رو هم حرام دونسته. اونم زیاده رو می کرده. راه کجا؟ دارستانی؟ شهرم. میانه. میانه شهر ماست. شهر ما همه باید راه میانه رو برد. آره. میانه بهتر جا. <تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر یکی میانه ای باشه به چی میگن؟ میانه جی میگن. آره. آیت الله احمدی میانه جی میگن. فارس. فارس. میانه. مم. اسم فارسیه. برای شما یه چیز جالب بگم. این فان تورکیسم اینو حفظ زدن بگید اکثر شهرای آذربایجان اینها اسمشون فارسیه. میانه، دوآ، میان پشرو، تبریز، میانه، و بعد همین ترتیب لال اننا. خب ها، و ان الفاتره تا تشملو علی الدعاء. میگه که آقا جان آمین یعنی خدایا اجابت کن این دعایی که کردم خب فاتحه هم توش دعا هستیه پس چرا میگید حرامه؟ بذار بگیم روه شاید سانی میگه ندیه اینو نکت این کوتاهی کردید ضعیفه. خب اینجا پرانتزو ببندید چون از این لاله نه رفت رو همون چیزی که گفتم حدمتون چه شهید سانی گفت که این آمین حرامه باید ترچه و باطل میکنه نه لا لنه نه به خاطر این البته اگر سلطان رو ببینید چریمی الان سلطان رو ببینه سلطان گفته که نه این لاله لنه در راستای همین چرهت تامینه ولی انگار اون درست نیست البته مرد بر یه خود روان نیست دیگه یعنی مرد یه خود جیز کننده است ولی انگار این که الان توضیح میدن بهتره. لا انده حالا دقت کنید خاطر اینکه قصد دعای به ها یوج بست امال یه خورده دقیقتی رو ببرید بالا اگه دقیقتی زیاد نباشه، این چند خطر رو متوجه نخواهید شد درد سر میافتید باید هی به دنبال شروع شروع همچه هست کردم چون چند تا مرمن مختلف هست دیگه بدتر میشه جیش میشه آمین حرام است به خاطر نهر بطلام میکنه سلات رو به خاطر نهر باید گفته نکنید دیگه نه به خاطر لال لالن قصدت دعای به ها یوج بست امال مشترکی معنیه علا تبقیر قصد دعای به قرآن اینو فکران شیخ توسی گفته ها چی گفته این رو براجو شکر تبیان آره شهر توسی تو تبیان تبیان میدونید چه کتابیه؟ تفسیر تبیانه باید تفسیر ببینیم اونجا اینجوری گفته شده گفته آمین چرا نماز رو باطل میکنند علتش اینه شما اگر بعد از همد بگید آمین یعنی عبارات سوره فاتحه چیه؟ دعاست در حال که چیه؟ قرانه؟ پس معلوم میشه که شما قرآن رو از قرآنیت جدا کردید، دعا قصد کردید الان ما تو دعا میمیم، ببناتنافر دنیا حسنم اونجا داریم دعا میکنیم یا قرآن میکنیم؟ دعاست، تو قنود دعاست ولی وقتی اون صفحه قرآن رو باز میکنیم میخونیم، اون دیگه چیه؟ قرآنه، دعا نیست که دعا با قرآن دو تاست حالا شما بعد از فاتحه بیای آمین بگی یعنی قرآن دیگه نیست در حال که نماز چی لازم داره؟ قرآن لازم داره شما از قرآنیتش انداختی پس آمین گفتن بعد از همت باید چیکار کنه نماز رو؟ باطل کنه چرا؟ چون شما چی ندارید تو نمازتون؟ بگید چی ند؟ دعا لده شما ندارید؟ قرآن ندارید یعنی فاتحه رو نخوندید فاتحه رو امتن نهون، و صلوات الله به فاتحه. درست؟ خوبی بود؟ شاید سالی میگه نه. لا لعنتا زودتر جوابش شده. عجیبی یعنی تلازم نگو بگو یه تزاتی کرد میگه قرآن بودن با دعا بودن نمی سازه. اتفاقا شاید سانی الان جواب خواهد داد لال عنه میگه چون منافقان رو هم قران و هم دعا چش کرد ببینی دیدی محمدی دیدی لال عنه قصد دعا ده ها یوجب استعمال مشترج فی معنای ه تقدیر قصد دعا حالا اینجاشو نگفتم بذارید اینجاشو بگم تک میشه شما میگید که بابا ما هم استعمال قرآن بشه این هم دعا یعنی این ربنا چیه تو سوری فاته احتنس سراطن مستقیم احتنس سراطن مستقی. چه خوندیم هم دعا و هم قرآن درنت چه آمین وردی هم مشکل نداره این هم بگید که میشه استعمال مشترک در دو معنام استعمال مشترک در دو معنام نمیشه پس ببین دیگه استعمال چی؟ حالا این طبیل شیخ توسیه دیگه شیخ توسی این استعداد رو برده که ما به این دلیل آمین بگیم خراب میشه پس ببینید اینو رو بندی کنم بعد بریم تو من میگه اگر شما میگید که آمین رو گفتم اون اهدن از صلات هم قرآن هم دعاست آمین هم جور در میاد میگیم پر استعمال در اکثر از منا شد اگر بگه نه دعا بود من آمین گفتم میگه پس حواس خب قرآنیت انداختی اگر بگه نه قران بود حالا این چی میگاز قرآنیت نندختم فاتحه همون قرانه اونم هم مشکلش اینه که پس امین چه چیزی درقی میشه امین مگر مثلا نجاستی جوگی میگه امین امین چی حواس هر دست پس میگه امین این چی میشه خب اون یه نقطه دیگه است چه اگر لغو بشه لغویتش چجوری پاتل کنه شاید از باب همون کلام بیجا باشه حالا این بارد رو ببینید. پس سه جور این زاویش رو سه زاویش رو بردست کردیم؟ تبقیه هر سه زاویه باته حالا ببینید. لعنه. بله. لا لعنه. قصد دعا به واسطه این فاتحه روی بها به بنویسید فاتحه. یوجب استعمال علم مشترج یعنی یه لفظ مشترک در معنیه. روی معنیه بنویسید هم قرآنیت و هم دعاییت. شون هم معنی قرآن رو لحاظ کردید هم دعاییت شد علا تقدیل قصد دعای بالقرآن میگید هم قرآنه به واسطه این قرآن قصد دعا هم میکنم پس استعمال مشترک در دو معنی شد شاید هم بگید نه من قصد دعا ندارم هم قرآنه در نتچه استعمال مشترک کنم پیش نمیام میگی خب پس و ادم ادم من اینو الابش ل... بخونیم لا عدم میخونیم فکر میکنم جو کجا به استعمالات جوج به آن عدم ها عدم نه نه نه اخ اونجا لان قصد دعاء بها یوجب و اینجوری دیگه قصد دعاء نداریم لان عدم ما مثلا میرسه به کل می بخ... اون ان نمیتونیم عطف کنیم ليش لا عدم فایده عطفه رو کنید. حالا اون رو باز خودتون رو فکر کنید این مهم نیست این رو فکر کنید اصل مطلبش رو دست ندیم مل یا ادمه فائدت تأمینه من اول. الول اگر هم نه انتفاع اول اول رو بگید دعا قصد دعایت. اگر هم میگید نه قصد دعا نداشتم فقط قرآن پس استعمال مشترک فی مهنه یعیه نشد خب قصد دعا نکردی امینو رو برای چی گفتی پس؟ ازم فایده تامین، و انتفاع دعا شما میگید که و انتفاع القرآن و سانی میگید که نه من قصد دعا کردم امینم به خاطر اون گفتم اون وقت قصد قرآنیتشو خراب کردید و انتفاع القرآن و سانی یعنی قصد قرآنیت رو اگر انتفاع کردید قرآن پاسف میشه از نمازتون و میدونید نماز بدون قرآن نماز بدون فاتحه باطله. پس سه تا حالت هر سه تاش موجب بطلان هست شهید ثانی میگه که منو نگاه، درس من نگاه، شهید سانی میگه آمین گفتن در نماز نه، من سر حرف خودم هستم. باطل میکنه به خاطر نهی تو روایا. نه به خاطر این تشکیلات که الان درست کردید. این سه تا چیز که گفتیم. لا لین چرا آیا شهیده چرا این دلیل نیست؟ الان تو کلاس ما علی محمدی طرفتار این دلیل بود. میگه خوبه. چرا شهیده این حرف شیخ توسی رو نمی پذیرد؟ از این لین نه جواب اینه. میگه لین نه. همون چیزی که شما گفتید دیگه. لین نه قصدت دعای منزل من ها قرآنم. لا یو نافیه. وقتی من دوران قرآن میخونم خاطر دعاشم میکنم کنارش چه, چه اشکال داره الان تو قران نشو ربانا لا توجح قلوبنا بعد از هدایتان قرآنه من به عنوان قران میخونم اگرم نوشته باشه دست نمیزنم روش ولی خاطر قرآنیت و دعایت رو با هم میکنم چه اشکال منافات نداره پس همون چه شما گفتی که تضادی درست کرده اونجا شیخ طوسی این تضاد دلیل نداره لان نقصه دعا بل منزل منه قرانم قصد دعا به آنچه که نازل شده است منهو از قرآن به عنوان قرآن نازل شده منافاتی نداره منت دعا بزنی نظر رفقا به بالمنظل من القرآن یا من دعا من دعا قرآن انگار اگر اونم میشه حالا ببینید کدوم بهتره بیند دعا دعای؟ نه دعا. دعا. دعا اون همزش چیز نیست اصلیه علفش علفه تنیس نیست موقع علفه تنیس بود که همزش زایده باشه مثل آشورا همرا پروفسیش از اینش همراه, همراه علف و همزهه زایده باشه این نه همزهش این زائده نیست خب قسمت دعا به آنچه که نازل شده است از دعاها به عنوان قرآن یا من القرآن انگار هر میشه هر باز میشه لا یو اینجا تضاد نداریم،, نداریم و لا یو جبل اشتراکه پس آجان ما میتونیم از اون قرآن قسمت دعا هم بکنیم پس این دل شما درستیست و لا یو جبل اشتراکه موجب اشتراکه هم نمیشه روی اشتراک بریم یعنی استعمال لبس در دو معنا، چرا استعمال لفظ در دو معنی نمیشه؟ چرا اشتراک بین دو معنی نمیشه؟ فرانسان دو معنی نداریم لحتهاد المعنی دو معنی نداریم یعنی قرآن در اونجا همون دعاست دیگه دعا همون قرآنه یکیه هم؟ حالا ول اشتمالهی اینو بنویسید علت برای اون دو تو تعبیر شیخ تو سه تا چیز بود دیگه انفعال عدم فاعلیت عدم تامین مع انتفاع اول الان اونو رو میگیم اون چرا نیست بگید لشتمال علی طلب الاستجابه لماید او بهی اعم من حاضر. چون مشتمل است نه دقت کنید زمین رو دقت کنید لإشتماله إشتمال چه چی چیزی بر طلب استجابت تامین تضمین مشتمل است بر طلب استجابت یعنی خدا رو اجابت کن پس لشتمال این تضمین بر طلب استجابت لما يد به بران چیزی که دعا میکند به آن آن چیزی که میخواد تضمین طلب استجابت برای دعایی که از خدا میخواد خب اعممن حاضر اما از دعای فعلی این تأمین میتونه برای دعاهای قبل برای دعاهای بعد هم باشه حتما لازم نیست که علام الان الان باشه الان یه رسی نگاه کن. الان جان نشستم میگیم آقا ما کلی دعا دیروز داشتیم هر روز دعا میکنم فردا هم دعا خواهیم داشت. لذا از خدا بخوایم که اجابت کنم خدای آمین ما الان دعا نکردم. دعاهای دیروزم گفتم. خدای آمین. این خدا خدایا دعاهای پارسال منو اجابت کن. این اشکال داره؟ پس این چه شما گفتید؟ عدم الفائده تامین مع اول. یعنی اگر قصد دعا نکنم از این فاتحه این تامین فایده نداره، چرا تامین فایده نداره؟ تامین یعنی خدایا همه دعاهای رو استجابت کن. این چه اشکال نداره؟ پس اینم رد اون کی چشه؟ حالا چه اینجوری شد شهید ثانی میگه آه پس این دلیل به نمیخوره و این نمل وجه و انهی وجه همون نهیست نه که گفتیم پس این جنبندی در 3 ثانیه جنبندیش اینه شهیده ثانی میگه آه تامین آمین گفتن بعد از هم نماز را باطل میکند به خاطر نهیه نه به خاطر این چیزی که شیخ توسی گفت چه شیخ توسی گفت اگر آمین را بعد از همد بگید یا میگید قصد قرآنیت و دعاयत با هم شده چه میشه استعمال مشترک فرمایین یا میگید قصد قرآنیت فقط شده چه دیگه آمین بیفایده میشه حالا اون از شاید کلام بیجا باشه یا این که بگید نه قصد دعا شده چه قرآنیت خراب میشه شاید کسی میگه نه اینا رو نگید اینا باطله با این توضیحاتی که الان تو این دو خط گفتیم اون باطله و ان عملوا علیه و فقط همون نهیه ولا تپول و به ترچهحی فیاز تقییه اگر شما امین گفتن را در موضع تقییه ترک کنید یعنی تو بین دایشی ها باید امین میگفتید نگفتید اون وقت نماز باتل میگه نه لا تپتول و به ترچهحی فزه تهلییه، لنهو خارجون به انها این کاش این فکر می تو پیش مطاله میگه چون، آمین گفتن و شما ترک کردید باید امین می‌گفتید این خارج از صلاته متفرد شد الان چی کار دارین امین خارج از صلات و نهو خارج آنها و شما در خارج از نماز یک کار بدی انجام دادی واجبی رو ترک کردید اون که نماز رو باطل نمیکنه که ول و فلفله مع کان هیچ لشتمالهی لشتماله علا هلالچلامل منهی انها اگه اینو بتونید متوجه بشید خیلی خوبه ول ابتالو اون قبلش گفت هرچه تأمین در موضوع تغییر باطل نمی چون خارج از نماز دیگه شما الان نماز رو بخونی بعد از نماز نماز رو به الله بری مثلا مشروب بخوری نماز باطل نمیشه. اون به نماز رد و خارجه حالا تأمین همه خارج از نماز بود باید می نگفتی ولی نمیشه چون خارج از. اینجا میگه ول ابتال و فلفل معکاون هیچ جزال جن اجتماع به علل کلام شدی هم. چیه جس خب این الان کجاست این کجا اینو باید الان لینکش کنید به جای دیگه به جواب اخر نه نه وج نه نه نه اینو توضیح دادم دیگه حالا چون وقتم شد دیگه خودتون روش بدن فکر کنید اینو اونجا توضیح دادم پاورقی رو گفتم توضیح میدم براتون اونجا لازمتون نمیشه یه جای دیگه لازمتون میشه اینجا لازمه میگه ابطال در فلفل و شما یعنی الان این ابطال فلفل فلفل روش بنویسید پاسخ به اشکال یه نفر به شهید سانی اشکال میکنه میگه آقای شهید سانی شما میگید که ولا تطل وبتر چه فی مازه تقیه لانه خارج انها همین الان گفتی خارجه دیگه تأمین خارج ازم پس چرا اون صفحه قبل گفتید با گفتن امین نماز باطل میشه مگه اون خارج نیست میراست میگی ول ابطال فلفل چون اونجا گفتیم هی خارج یعنی چه زلیکش پر خارج از نماز به خاطر این هی علل کلام المنه چون مشتمل بر کلام است که کلام بیجاست نباید تو نماز ما کلام داشته باشیم چه بیش از دو حرفه سلامت بپرسی الله مصلح مرت بعد فاسای عبارتی و چیزای دیگه بود دقت میخواست اینا دقت نکنید بعداً یادش درست در باطل بله از حرفشون که عقب نمی‌شینن می‌خواد بگه فقط اونجا که گفتیم آمین باطل می‌کنه لنح اهل المعتزله الفساد आवाزتون باشه اون نه خارجه ها بس به خاطر کلام بیجا بودنش باطل کرده نه به خاطر که به خود عبادت یا جز عبادت باشه آمین نه خود عبادته نه جز عبادته خارج از اینو گوییم آره از خودش مشکل نداره اشکالش اینه اگر آمین یا تأمین خارج از نماز است و شما همین الان گفتید که باعث بطلان نمیشه ترکش تو موضوع تریه پس چطور گفتنش باعث بطلان میشه؟ در واقع آمین گفتن میدونی مثل چی میشه رحیمی؟ مثالش یادته؟ نه آمین گفتن در واقع مثل نگاه به نامحرم میشه شما وسط نماز به نامحرم نگاه کنید. اون نماز رو باطل نمیکنه که غلطه. حرامه. من نماز باطله. آقا اینجان، بین نماز تمرین گفتی خارج از نمازه. این باطل نمواد بکنه. او. میگه ها، راست میگی. ولی خب کلامی بیزاد که هست، پس باطل میکنه. که مثلا حیا داره اشکان میکنه اون که اجتماع امر و نهی اتفاق بیفته؟ اجتماع امر نه، اون مختزل فساد بودن شده میشه. اینجا نهی به خود عبادت یا جز عبادت تلاپ پیدا نکرده. میگه امر خارج تلاپ پیدا کرده، پس نماز باطل میکرد. چرا میگید باطل بکنه؟ فعلش بساطن این که کلامو بی که هست فعل کسیر نگفت چون فعل کسیر نیست یه دوست. کلام بی جا رو فقط گفت بسم آدار باشی خدا نگهدار شما چی بود فرماشتو بل الاحتماله علی طلب الاستجابهت نمایت او به عامه عامه نه ببین داره میگه شما چه گفتید اگر قصد قرانی قصد دعا از اصولی هم نشه امین بیفایده میشه میدونه چرا بی میشه امین یعنی خدا استجابت کن حالا عام از این که دعای من همین الان حاضر باشه همین الان دعا کردم بعد میگم امین یا اینکه یعنی قبلا دعا کرده باشند پس امین فایده داره لذا اون چیزایی که شیخ طوسی اونجا درست کرده و گفته اونها باطله اونها رو قبول نذید اونها درسته امین فایده فقط برای دعای الان و حاضر نیست دعای یه ساعت قبل دعای 10 بعد چی لذا بیفایده نمیشه چی شیخ طوسی با این بیفایده بودن میخواست رد کنه دیگه بگه آمین پس مبطله میگم نه بیفایده نمیشه چرا بی فایده, نمیشه. فایده قصد قرانیت کن از هم از همین امینم قصد استجابت کن هیچ مشکل پیش نمیید. پس چرا این همطور این درست کردی حرف بر میشه درست نیست؟ حالا حرف دیگه حالا حرف شاید ثانیه ممکن نپذینیم آره درسته ماره. یا همون حتی همون حرف که میگه که امین یه چیز خارج از نمازه. یعنی واقعا امین گفتن مثل نگاه به ناملم که کاملا از نماز بیرونه اینجوریه. من به اون جوزی از صلاتو را میگم یه جزء مستحب به صلاتو را میگم می... لذا این ما که این درسارو میخونیم اینا رو روش میشوت میشه بس کرد میشه شاید ثید ثانی میگه ممکنه حرف ثید نه نپذیرین بله ان شاء الله موفق باشید